دوستان آیا با این داستان قائن و هابیل آشنا هستیم؟ میدونید که هر کدوم هدیهی برای خدا آوردن و هدیهی حابیل پذیرفته شد. اما خدا هدیه قائن رو نپذیرفت. عزیزان به کلاس دانشکده کوچک کچک کتاب مقدس خوش اومدین. راستی چرا هدیه قائن پذیرفته نشد؟ آیا چیز غلطی بود؟ آیا به اندازه کافی بزرگ نبود؟ در جلسی امروز درسمون رو ادامه میدیم. این درس طراحی شده که شما مهمترین کتاب جهان رو کلام خدا رو کتاب مقدس رو بهتر بفهمین. برخلاف عقیده بسیاری از مردم مشکل در هده قائن نبود. بلکه خود قاین بود که غیر قابل قبول بود. حالا بیاین به درس و به معلممون گوش کنیم. برادرت کجاست؟ در این جلسه ما درسمون رو با بررسی کتاب پیدایش ادامه میدیم. اول کتاب از 66 کتاب کتاب مقدس. ما بررسی کتاب رو با یک نگاه عمومی آغاز کردیم. به بعضی از چیزهایی که در کتاب مقدس اشاره شده بود نگاه کردیم. حالا به باب چهار رسیدیم و میخوایم دوباره به چیزهایی درباره منظور از نوشته شدن کتاب پیدایش اشاره بکنیم. لطفاً این تصویر رو در ذهنتون نگه دارید. پیدایش که به معنی آغازها هست. به ما از چیزهایی میگه آنگونه که بودند نه به خاطر اینکه خدا احساس میکنه که به ما بده کاره که توضیح بده بلکه چون خدا میخواد اونطور که بود به ما بگه تا ما بتونیم اونطور که هست درک کنیم. چیزهای زیادی در کتاب پیدایش هست که به این طریق به ما شرح داده شده. خدا میخواد ما ازدواج اونگونه که هست درک کنیم به این دلیل ازدواج رو آنگونه که بود به ما میگه از این رو در باب سه اون بحران رو همونطور که بوده شرح میده. در بخش دوم باب سه به ما راجع به ارتباط بین خدا و انسان آنگونه که بود و آنگونه که هست گفته شده. به محض اینکه انسان گناه کرد و مرد شکست خورد، شرط داده شده که خدا داره دنبال انسان می‌گرده و با او گفتگو میکنه از او سوالاتی می‌پرسه مثل کجا هستی و کی به تو گفت. همونطور که در بخش دوم باب سوم کتاب پیدایش می‌بینیم، ما باید درک کنیم که این چیز خیلی مهمی رو شرح همون همون‌گونی که هست. خدا امروز هم دنبال ما میگرده امروز هم با ما حرف میزنه اگه اینو فهمیدیم بسیاری از تجربه هایی رو که داریم خواهیم فهمید مخصوصا تجربه هایی که بهش بحران یا تراژدی میگیم پس بسیاری از این تجربیات بحرانی و غمانگیز در واقع به خاطر اینه که خدا دنبال ما میگرده سعی میکنه توجه ما رو جلب کنه سعی میکنه ما رو وادار کنه که فکر کنیم که کجا هستیم سالها قبل مردی رو میشناختم که فرمانده یک اسکادران جتای نیروی هوایی بود. این مرد راجع به تدبیری که برای همه خلبانانش که زیر دست او بودن اندیشیده بود به من گفت وقتی که اونها روی دریا بودن اغلب در حین پرواز گم می شدن. پس فرمانده اونها این تدبیر پنج نکتهی رو برای اونها اندیشید و گفت هر موقع که حد زدید که گم شدید به این تدبیر پنج نکتهی فکر کنید. با انگشتان دست چپتون این رو به خودتون بگید. اولین انگشت به نشانه اولین نقطه تدبیر اقرار هست. اقرار کنید که گم شدید. با این سرعت که جت‌های امروزی پرواز می‌کنند، اگه اونها اقرار نکنند که همین الان گم شدند، خیلی سریع مسافت بیشتری رو گم خواهند کرد. پس اولین نقطه تدبیر اعتراف هست. دومین نقطه صعود هست. او گفت اونا سعود می کنند چون وقتی در ارتفاع بالاتری هستند بنزین زیادتری مصرف نمی کنند و ارتباطشون بهتر هست. وقتی در ارتفاع بالاتری هستند هم سوخت کمتری مصرف می کنند هم ارتباط بهتری دارند. پس دومین نکته تدبیر صعود هست. سومین نکته تدبیر ذخیره کردن هست. وقتی شما گم شدید نباید سوخت زیادی بسوزونید. او گفت مردی به برج مراقبت پیغام فرستاد و گفت من جایی در جنوب غربی اقیانوس آرام گم شدم اما وقت فوق‌العاده عالی دارم وقتی شما گم شدید و نمی‌دونید به چه مسیری خواهید رفت وقت خوبی برای خوش بودن نیست پس سومین نکته در این تدبیر اینه که به محض اینکه ارتفاع گرفتید دریچه کنترل بنزین رو بکشید و بنزین رو ذخیره کنید دو نکته بعدی تدبیر مهمترین اونها هستند چهارمین نکته تدبیر مکالمه هست. با برج مراقبت در تماس باشید با بالاترین مقام برج مراقبت صحبت کنید و بعد نکته پنجم در این تدبیر فرمان برداری هست. از اون مکالمات مسئول برج مراقبت اطاعت کنید مسیرها رو رعایت کنید پس نکات اینها بودند اعتراف صعود ذخیره کردن ارتباط و اطاعت این تدبیریه که برای خلبانان جت گم شده اندیشیده شده که به اونها کمک میکنه وقتی گم میشن به مسیرشون برگردن در باب سوم کتاب پیدایش در نیمه دوم باب، این اون مسیری که خدا شرح میده. خدا میخواد که ما تدبیری روحانی داشته باشیم و وقتی که گم میشیم، همونطور که آدم و هوا گم شدند او از ما میخواد که اعتراف کنیم که گم شدیم. بعد او از ما میخواد که سعود کنیم و یا در مسیر او حرکت کنیم. وقتی این کار رو کردیم، خواهیم فهمید او پیشاپیش در مسیر ما حرکت میکرده. ما باید وقتی راهمون رو گم کردیم ذخیره کنیم یا محتاط باشیم وقتی که معتقدید راهتون رو گم کردید تصمیمات بزرگ و جدی نگیرید مهمترین نکته در این تدبیر پذیرفتن اون ارتباط با خدا هست خدا میخواد با شما حرف بزنه این پیغام نیمه دوم باب پیدایش سه هست وقتی خدا با شما گفتگو میکنه، همیشه از اون گفتگو تبعیت کنید کلام رو اطاعت کنید مادر عیسی گفت هر چی که او میگه انجام بدید این قانون همیشگیه وقتی که اعتقاد دارید خدا با شما حرف میزنه همیشه تبعیت کنید در باب سوم پیدایش شما عواقب مثبتی رو میخونید مانند اینکه خدا دنبال ما میگرده سعی میکنه ما رو نجات بده سعی میکنه ما رو خلاص کنه و درباره عواقب نبوتی میخونید برای مثال در آیه پونزده پیدایش سه، شما اولین نبوت درباره مسیح رو میبینید ما لازم نیست که صب کنیم تا به باب دوازده پیدایش برسیم به داستان ابراهیم که بشنویم خدا از برنامه نجات عظیم و بخشش با ما حرف میزنه در پیدایش باب سه آیه 15 خدا از نقشه عظیمش به ما میگه که وقتی او با مار صحبت میکنه و میگه ادامت در میان تو و زن و در میان زوریت تو و زوریت وی میگذارم او سر تو را خواهد کوبید و تو پاشنه وی را خواهی کوبید آیا میدونید نای از چی حرف میزنه این یک نبوت راجب مسیحه این اولین اشاره در کتاب مقدس که خدا میخواد کسی رو به این دنیا بیاره که او همه چیز رو اصلاح خواهد کرد اون نبوت زیبایی راجب مسیحه و یکی از عواقب نبوتی افتادن هست البته عواقب منفی زیادی هم هست برای زن برای مرد و برای زن و مرد جدی ترین این عواقب منفی رو ما در انتهای باب میخونیم، اون چیزی که ما بهش جدایی از خدا میگیم، اونا از خدا جدا شدند اونا از باغ رانده شدند کاربرد این حیرت انگیزه امکان داره که کاربرد این بتونه پیغام خدا برای انسان باشه که چیزی مثل اینه اگر یاد نگیری که کلام مرا در اولویت قرار بدی و تمامی نیازهای خودت رو در پرتو کلام من تفسیر کنی اگر درک نکنی که تو با هر کلامی که من به تو میدم زندگی میکنی تو از زمین رانده خواهی شد من فکر میکنم که احتمال این خیلی زیاد هست حتی در زمان ما در انتهای باب گفته شده که یک شمشیر آتشین از درخت حیات محافظت میکرد. خدا و انسان جدا شدند و تنها راهی که انسان میتونست به درخت حیات برگرده از مسیر شمشیر آتشین بود. بسیاری بر این که شمشیر آتشین تصویری از عیسی مسیحه، کلام زنده. زیرا او تنها راه بازگشته. وقتی او آمد گفت من راه هستم و راه دیگری نیست. اون شمشیر آتشین همچنین میتونه تصویری از کلام خدا باشه چون ایمان از شنیدن کلام خدا میاد. بنابراین از خیلی لحاظ کلام خدا تنها راه برای بازگشت به حیاته. در باب چهار ما عاقبت دیگری از افتادن رو میبینیم. در باب چهار ما توضیح خدا از ناسازگاری رو میبینیم. انگونه که بود چون خدا میخواد ما ناسازگاری رو انگونه که هست بفهمیم. ما در ناسازگاری با خودمان هستیم ما با شرک های خودمون در ناسازگاری هستیم به عنوان زن و شوهر ما با بچه های خودمون در ناسازگاری هستیم با والدینمون ما در ناسازگاری بین کارگران و کارفرمایان هستیم هر کسی به طور مداوم در اعتصاب به سر میبره البته ما ناسازگاری بین المللی بین ملتها رو میبینیم ناسازگاری یکی از مشکلات بزرگ اصر ماست در پیدایش باب چهار خدا به ما بعضی از عوامل کلیدی رو که سبب ناسازگاری میشن و بعضی از راحل ها رو میده که میتونن ناسازگاری رو حل کنن. او این حقیقت رو به ما به شکل داستانی از دو برادر میده. این برادران خیلی برای ما آشنا هستن. اسامی اونها قائن و حابیل هست. کتاب مقدس میگه این ایده قائم بود که هدیه برای خدا بیاره. چون که او شیار کننده زمین بود، یک کشاورز، او هدیه‌ای از اون نوع برای خداوند آورد. برادر او هابیل یک شبان بود. پس او هدیه‌ای از حیوانات آورد. هر دوی اونها برای خدا هدیه آوردند. اگه داستان رو خیلی به دقت بخونید اون میگه خدا از قائن به عنوان یک مرد راضی نبود. قائن برای خدا مقبول نبود. بنابراین خدا هدیه قائن رو نپذیرفت. به دقت به این توجه کنید. بعد اون میگه خدا از هابیل راضی بود. هابیل مرد مقبول خدا بود. بنابراین هدیه هابیل پذیرفته شد. بسیاری از مردم وقتی این داستان رو میخونند میگن مشکل قاین بود که او حیوانی به عنوان قربانی نیاورد در حالی که اون چیزی بود که به وضوح به اون امر شده بود بی پرده بگم توی متن چنین چیزی نیست ما دو تا کلمه هست که می‌خوایم در این مرحله به شما معرفی کنیم اینها کلمات یونانی هستند کلمه اول اگزاکسیس به معنی تفسیر کردن هست اون کلمه زیبایی که معنیش هست گرفتن آیه ای از کتاب مقدس و در هر آنچه که در اون آیه هست اگه به دانشکده الهیات برید یونانی خواهید خوند. چون اگه میخواد یک محقق کتاب مقدس بشید یا یک خادم، در اولین سال شما دستور زبان یونانی رو خواهید خوند. اگه چهار سال زبان یونانی بخونید، سه سال بعدی تفسیر خواهد بود. معنیش اینه که شما کتاب مقدس رو خواهید خوند و کتاب مقدس رو تفسیر خواهید کرد. اگزکیز زمانی هست که شما به آیه ای از کتاب مقدس در زبان یونانی میرسید و سعی میکنید که هر چیزی که اون کلمه یونانی در اون آیه به شما میگه، بیرون میارید. کلمه ای که مخالف ایس اگز اگز در زبان یونانی هست، ایسگزیس اکسیز کلمه یونانی ایس مخالف اگز هست. ایس به معنی درون هست. پس معنی ایسگزیس این هست که شما به آیه ای از کتاب مقدس می رسید و از درون آن آیه کتاب مقدس چیزی را می که اونجا وجود نداره. این مطلقاً ممنوع است. همین که قوانین مطالعه کتاب مقدس رو یاد می گیرید، اونجا یک نه بزرگ هست. چیزی رو از درون ای که درون وجود نداره نخونید. ما نمونه اونه قبلا در مبحث آفرینش در کتاب پیدایش دیدیم. جایی که مردم میگن یک ای بین آیات یک و دو وجود داشته، اصلا اینجا وجود نداره. این خواندن چیزی از درون کتاب مقدسه که درون وجود نداره. وقتی به داستان قاین و حابیل میرسید آسونه که چیزی رو که در اونجا نیست بخونید. به قاین آموزش داده نشده بود که یک حیوان به عنوان قربانی بیاره. در کتاب لاویان به این مردم یاداوری شده که هدیه های آردی و محصولات بیارن. اگه این چیزیه که اونها عرضه کردند، پس هدیه بخش مهم این داستان نبوده. واضحه که موضوع مهم در اینجا هدایا نبوده. در باب 11 کتاب عبرانیان تفسیری از این داستان هست و اون میگه که حابیل توسط هدیه شهادت داد که خودش عادل بود. ببینید خدا بیشتر بر خود مردان متمرکز بود تا بر هدیه اونها. داستان اینجا اینه قاعن آقای نامقبوله به اعتقاد من به ما نگفتن چرا اون نامقبول بود فقط نامقبول بود و البته خدا اینو میدونست حابیل آقای مقبول هست آقای نامقبول و آقای مقبول هدایایی به خدا عرضه میکنن و خدا هدیه آقای نامقبول رو رد میکنه آقای نامقبول داستان اینطور میگه که خشمگین و افسرده بود او عصبانی و افسرده بود مارتین لوتر گفته گناهان اغلب دو قلو هستند و روانکاوان نیز به ما میگن که این دو گناه یا مشکل به همراه هم به عنوان دو قلو ظاهر میشن عصبانیت و افسردگی شخص عصبانی معمولا شخص افسرده هم هست قاین خیلی عصبانی و خیلی افسرده هست و بعد داستان میگه آقای مقبول حابیل به آقای نامقبول قاین قدم میزنن قاین به او حمله میکنه و اونو میکشه بعد خدا وارد این قضیه میشه و دوباره سوالاتی میپرسه درست همونطوری که در پیدایش سه سوال کرد. نزد این مرد عصبانی آقای نامقبول میاد و این سوالات رو از میپرسه. چرا عصبانی هستی؟ چرا افسرده هستی؟ برادرت کجاست؟ چیکار کردی؟ و بعد مخصوصاً این سوال در آیه هفت اگر آنچه درست بود انجام میدادی آیا مقبول نمیشدی؟ و اگر آنچه راست است انجام ندادی گناه بر در قلب تو بر کمین است. قصد اون حلاق کردن توست؟ تو باید برون مسلط شوی. این داستان به ما چی میگه؟ اعتقاد دارم که اون به ما پیغام خیلی جدی میده. آیا شما شخص عصبانی هستید؟ آیا شخص ای هستید؟ وقتی عصبانی میشید، افسرده میشید؟ هر بار که عصبانی میشید، این سؤال خیلی خوبیه که باید از شما بشه. چرا عصبانی هستید؟ منبع خشم شما چیه و حقیقت چیه؟ عامل واقعی عصبانیت شما چیه؟ اغلب اوقات شخصی که مورد حمله قرار میگیره مثل حابیل عامل اسبانیت نیست. او فقط تصادفی اون دورو برا بود. یادمه در یه سمینار روانشناسی مسیحی برای همسران بودم و خانمی داشت مشکلاتش رو مطرح می کرد. اونطوری که می مشکل او این بود که فرزند کوچک من من حقیقتا دیوانه میکنه و دکتر گفت خب بچه های شما چند سالشونه؟ او گفت سه و پنج ساله. دکتر گفت وای خدای من این مسئولیت فوق العاده که به یه بچه کوچیک داده بشه. خالون پرسید چه مسئولیتی؟ دکتر گفت مسئولیت ملاحظه حال هوای احساسی شما که شما میخواید شاد یا غمگین یا عصبانی بشید بستگی به اونها داره. اونها شما رو عصبانی میکنن. دکتر گفت بذارید ازتون یه سوالی بپرسم. آیا اونا عصبانیت رو بیرون میکشند یا اونا عصبانیت رو در شما قرار میدن؟ طول نکشید تا اون خانوم بفهمه که بچه ها عصبانیت رو برای او تحمیل نمی کنند. اونها عصبانیت رو از درون او بیرون می کشند. حقیقت این بود. او احتمالا از شوهرش عصبانی بود اما نمی عصبانیت رو سر او خالی کنه. عامل عصبانیت شما چیه؟ منبع حقیقی عصبانیت شما چیه؟ خدا این رو سؤال کرد. به اعتقاد من کمک کرد که قائن جواب پیدا کنه و به ما کمک میکنه که جواب رو پیدا که عصبانیت ریشه بسیاری از کشمکش هاست بعد خدا این سوال رو کرد برادرت کجاست؟ به پیدایش باب سه توجه کنید سوال اینه تو کجا هستی؟ در پیدایش باب چهار میپرسه برادرت کجاست؟ به اعتقاد من چیزی که خدا داشت سعی میکرد به قائم بفهمونه این بود که هیچ مشکلی در برادرتو نیست هیچ مشکلی در حابیل نیست برادرت کجاست؟ او شهروند برجسته ایه و آقای مقبوله. او مرد خوبیه. پس چرا از حابیل عصبانی هستی؟ چرا حابیل رو کشتی؟ تو اینجا واقعا چی کار کردی؟ محرک های چیزی که اینجا اتفاق افتاده چیه؟ به اعتقاد من آیه هفت کلید کل این داستان هست. چون اون راه حل بزرگی برای مشکل ناسازگاری هست. در ریشه ناسازگاری شخص عصبانی رو میبینید و این محرک ها رو برای عصبانیت او میب خشم فقط تجربه نمیشه که شما به چرا عصبانی هستید. شما هنوز عصبانی هستید. شما واقعا نیاز به راه حلی برای حل عصبانیت دارید. و راه حل اینه. اگر نیکویی می کردی، آیا آقای مقبول نمی اگر کاری که درست انجام میدادی، برای خدا مقبول می برای خودت مقبول می شدی. و لازم نبود که برادرت حابیل رو بزنی تا بمیره. به حابیل حمله کنی. عیسی همون چیز رو در باب 17 انجیل متا گفته من دائما به عهد جدید اشاره میکنم برای اینکه در عهد جدید ما چیزی رو پیدا میکنیم که به کتاب مقدس انسجام میبخشه. به اعتقاد من عیسی داشت در مورد همون مطلب با باب 7 صحبت میکرد وقتی این رو گفت داوری نکنید تا بر شما داوری نشود زیرا به همان گونه که به دیگران داوری کنید بر شما نیز داوری خواهد شد و با همان پیمانه که وزن کنید برای شما وزن خواهد شد چرا پرکاهی را در چشم برادرت می‌بینی اما از چوبی که در چشم خود داری قافلی و چگونه می‌توانی به برادرت بگویی بگذار پرکاه را از چشمت بدر آورم حال چوبی در چشم خود داری ای ریاکار نخست چوب را از چشم خود بدر آور آنگاه بهتر خواهی دید تا پرکاه را از چشم برادرت بیرون کنی بسیاری از مردم این متن را می‌گیرند پنجاهی اول باب هفتم تا در موزه سرکو و میگن چیزی که در واقع عیسی میگفت این بود داوری نکنید و سلام این چیزی نبود که او گفت او در واقع داشت این سوال رو عنوان میکرد چرا داوری میکنی چرا ریاکار هستی چرا دائما در اطراف میگردی و نگاه میکنی چنان که گویی خدا تو رو فراخونده تا لکه ها رو بازرسی کنی تمام خدمت شما این هست که پرکاهی کاهی در چشم برادرت پیدا کنی و این ریاکاریه برای اینکه خودت تیری در چشم داری. یا به عبارت دیگه میتونیم بگیم شما الواری در چشم خودت داری در اطراف میگردی و میگی خدمت من اینه که کسانی رو که پرکاهی در چشم دارن پیدا کنم و کمک کنم در بیارن این ریاکاری نیست؟ این ریاکاریه او دو سؤال میپرسه اول او این سؤال رو میپرسه چرا ریاکار هستی؟ و بعد این سوال رو میپرسه چطور امیدواری که فعال باشی با اون تیر چوبی که در چشم خودت داری؟ و بعد راهلش اینه، اون چوب رو از چشم خودت بیرون بیار، مشکل خودت رو حل کن، اون وقت واضحتر خواهی دید که به برادرت کمک کنی، پر کاه رو بیرون بیاری. عیسی واقعا نمیگه که داوری نکنید. عیسی میگه که داوری کنید، اما قبل از اون که برادرت رو داوری کنی، خودت رو داوری کن. اول مشکل خودت رو حل کن، اون وقت در مورد دیگران ریاکار نخواهی بود. این همون چیزی که خدا به قائن در پیدایش باب چهار میگه اگر آنچه نیکو بود انجام میدادی شخص مقبولی میشدی در واقع این قلب مشکل هست روانشناسان کاری رو که قائن میکنه بهش انتقال یا برونفکنی میگن واقعا او از کی عصبانی بود؟ احتمالا از قائن، از خودش او نامقبول بود و از این موضوع خشمگین بود خشمگین از خودش او دو تا داشت، او یا میتونست کار نیکو بکنه یا میتونست در زندگی خشم رو به اشخاص دیگه انتقال بده. ریختن خشم خودش به هابیل و بعد زدن او که بمیره. او گزینه دوم رو انتخاب کرد. همه ما این رو انتخاب میکنیم چیزی که خدا در قاین اشاره میکنه اینه. چوب رو از چشم خودت بیرون بیاور، خودت مقبول باش و اون وقت داوری یا ریاکاری نخواهی کرد. داستانی از دو روانشناس شنیدم که دفترهاشون در یک ساختمون بود. اونا با مترو با هم می اومدن. با هم وارد ساختمان میشدن و هر روز همزمان وارد آسانسور میشدن. یکی در طبقه ششم از آسانسور پیاده میشد و اون یکی به طبقه دهم ده میرفت. این داستان روزها پشت سر هم ادامه داشت. یه روز وقتی اونها در آسانسور بالا می رفتن، درها در طبقه شش باز شد، اما قبل از اینکه این روانشناس پیاده بشه، اون یکی برگشت و به دیگری توهین کرد.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 شما مشکلات زیادی دارید. شما باید کسی را پیدا کنید که در مورد مشکلطف کردن به دیگران به شما کمک کنه. شما قادر میشید بر این حقیقت متمرکز بشید که این مشکل او هست. من نمیدونم چند بار در جلسات مشاوره به عنوان یک شبان این داستان رو برای خانم ها بازگو کردم. مردان متخصصند که خانم ها را وادار کنند احساس کنند که همش تقصیر اونها بوده. آیا تا به حال به اون توجه کردید؟ وقتی در یک ازدواج مشکل هست، مهم نیست که اون مشکل چیه مهم اینه که آیا مرد توانایی داره مثلا تقصیرها رو به گردن زنش بندازه اگر شما به اندازه کافی جذاب بودید اگر به اندازه کافی آرایش کردی، اون وقت من سردمزاج نبودم و جالبه که خانوم ها چطور اونو باور باور کنند. در جلسات مشاوره در یک جلسه مشاوره بارها پشت سر هم من اون داستان کوچک رو به خانمی بازگو کردم و بعد پرسیدم آیا به این حقیقت فکر کردی که اون شاید مشکل او باشه و گاهی در حالی که اشک می ریختن میگفتند می شاید این مشکل او باشه من هرگز به این فکر نکردم شاید این مشکل او باشه من هرگز به ذهنم خطور نمیکرده که این می تونه مشکل او باشه. اغلب اوقات مشکل در طرف مقابله گاهی اوقات ما اونقدر تحت ستم بودیم اونقدر عصبی بودیم که وقتی به ما گفتند که اگر شما درست رفتار می کردید من این مشکل رو نداشتم باور کردیم مسئله اینه در مقابل خدا احساس امنیت کنید در مقابل خدا گام بردارید و در امنیت باشید و اون وقت شما در زندگیتون ریاکار نخواهید بود خشمتون را با انتقاد کردن داوری کردن دیگران به اونها انتقال نخواهید داد نمیدونم شما چقدر با ناسازگاری برخورد داشتید و یا اینکه اصلاً با ناسازگاری مواجه شدید در باب چهارم پیداش خواهید فهمید که تفسیر عجیبی درباره این مشکل هست که دوباره در نتیجه عواقب سقوط انسان گناه انسان با ترجیح راه خودش به راه خدا پیش آمده در کتاب پیدایش عواقب دیگری از سقوط هست برای مثال در انتهای باب چهار صمیمیتی با خدا هست که توسط انسان شروع شده به عبارت دیگر دعا اولین باری که شما دعا رو در کتاب مقدس میبینید در پیدایش چهار بیست و 26 هست تا اون زمان ارتباطات توسط خدا شروع میشده. از طرف خدا با انسان رابطه برقرار شده اما در انتهای باب چهار، انسان شروع کرده به خواندن نام خدا. اون دعا بوده به همون شکلی که بود تا ما بتونیم دعا رو به همون شکلی که هست درک کنیم. در پیدایش باب پنج و ده چیزی رو میبینید که بهش پیوستگی میگیم. یک دیدگاه تاریخی در کتاب مقدس هست برای اینکه به ما زمینه تاریخی رو بده که در اون منجی ما و نجات دهنده ما آمده. خدا به ما تسلسل تاریخی زیبایی رو میده. به خاطر این هست که خدا اون شجره نامه ها رو در کتاب و مقدس آورده. وقتی به پیدایش باب 6 میرسید تا باب 9 شما چیزی رو میبینید که بهش مصیبت میگیم. اینجا شما چیزهایی از شخصیت انسان و چیزهایی از شخصیت خدا یاد میگیرید. شخصیت انسان در نتیجه عواقب سقوط قطعا خراب شده. شرارت بزرگ پشت سر هم، زیرا که تمامی بشر راه خود رو بر زمین فاسد کرده بودند. زمین پر از ظلم شده. اینها چیزهاییه که در مورد شخصیت انسان می خونید. همچنین در پیدایش باب 6 تا نه داستان طوفان رو یاد می که درباره شخصیت خدا هست در حالی که اینو می خونید و مطالعه می کنید از خودتون این سوالات رو درباره شخصیت خدا بپرسید. قبل از هر چیز از خودتون بپرسید آیا خدا شخص هست؟ و سپس از خودتون این سوال رو بپرسید آیا خدا احساس داره؟ آیا خدا چیزی رو حس میکنه؟ همه ما ایمان داریم که خدا محبت هست و او رو دوست داریم. این باعث میشه احساس خوبی داشته باشیم. اما در واقع ما باید از خودمون سوالاتی مثل این بپرسیم. آیا شخصیت خدا مجموعی از خصوصیات مثبت هست؟ آیا اون یک خصوصیت یا های زیادیه؟ اگر خدا قابلیت محبت کردن رو داره، آیا قابلیت خشمگین شدن هم داره؟ یادمه که راجب مردی شنیدم که پدری مهربان و ملایم بود. مردی روانی دختر هفت ساله او رو نابود کرده بود این دختر کوچک مورد علاقه پدرش بود وقتی اونا این مردی رو که دختر کوچکش رو زده بود و نابود کرده بود به اداره پلیس آوردند ها تمامی پولیس های اون قرارگاه مجبور شدند که اون پدر رو بگیرند تا به اون مرد حمله نکنه چون که این مرد پدری مهربان و ملایم بود او قابلیت داشت به کسی که به دخترش صدمه زده بود خشم براز کنه در داستان طوفان این چیزی که شما از شخصیت خدا می‌بینید، خدا انسان رو دوست داره وقتی به پایین نگاه میکنه او گناه و نیروهای شریر رو که افراد مورد علاقه او و نقشه او برای انسان رو نابود میکنن میبینه. خدا میتونه اینجا ابراز خشم کنه. خشم خدا دقیقا اینه، عکس عمل نابود کننده خدای مهربان نسبت به آنچه افراد مورد علاقه او رو نابود میکنن. این پیغام فاجعه در پیدایش 6 تا نه هست. در حالی که کتاب پیدایش رو مرور می کنید به این همون طور که هست و همونطور طور که بود نگاه کنید این چیزی که خدا راجع در کتاب پیدایش حرف می زنه او راجع بسیاری از چیزها همون طور که بودن با ما حرف می زنه چون که می خواد ما این چیزها رو همونطور طور که هستن درک کنیم خب امروز هم وقتمون به پایان رسیده و از شما تشکر می کنم که امروز هم در بررسی کتاب مقدس همراه ما بودید می به شما یه ماموریتی بدم این داستان بسیار معروف قائن و حابیل رو بخونید ببینید که آیا میتونید کاربردی در این داستان پیدا کنید که بتونه به کسانی کمک کنه که با خشم و افسردگی زندگی میکنن در حالی که این داستان رو میخونید از خودتون این سوالات رو بپرسید این داستان چی میگه معنی اون چیه و معنی اون برای من چیه اگر خشم یا افسردگی یا هر دو رو دارید ببینید آیا میتونید برای خشم و افسردگیتون از خدا کمک بگیرید آیا جالب نیست که محیط انسان عوض میشه اما انسان عوض نمیشه؟ خشم، افسردگی، حسد، نفرت مشکلاتی هستند که همیشه همونطور طور بودن. اما راه حل خدا هم همینطور. طور. آیا میخواهید که روابطتون رو بهبود ببخشین؟ نزد خدا برین. همونطور که معلم ما گفت تنها راهی که میتونی مقبولیت خود رو دوباره به دست بیاریم اعتراف به گناهامونه و نگاه به خدا برای شفای اون در زندگیمون. باشه که خدا شما رو برکت بده و در دستهای پرمهرش اصوار نگه داره. تا برنامه بعدی خدا نگهدار.